الله الحمد. سلام عليكم رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. و من سیئات اعمالنا و نشهد انشهد انشهد انشهد انشهد الله انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد انشهد يما بغية الله في الأرضين نتغرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا بغية الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجك الشريف ورحمة الله وبركاته حسيكم عباد الله ونفسي وتقبل الله و اخذه من عقابه قرآن کریم درباره آثار و برکات تقوای الهی رهنمودهای فراوانی دارد از جمله در سوره مبارکه انفال می‌فرماید یا ای الذین ان الله یجعل لكم فرقان فرقان صیغه مبالغه و در اینجا به معنای چیزی است که انسان به خوبی حق را از باطل به تشخیص بده. نیروی قدرتی توانی که انسان بتونه حق را از باطل تشخیص بده. این قدرت به برکت تقوا حاصل می شود. این جمله کوتاه و پر معنا یکی از مهمترین مسائل سرنوشساز انسان رو بیان می کند. و آن این است که انسان در راه موثقیتش همواره پردگاه ها بیراه ها دشمنان وجود دارن که اگر ساله که این راه این موانع و آسیب ها و دشمنان رو نشناست، چنان سقوط می‌کنه که گاهی راه بازگشت نداره در مسیر حق و حقیقت انسان نیاز داره به شناخت حق از باطل دوست از دشمن راه از بیراه و پردگاه این آیه کریمه راه حل و برون رفت از این مشکل رو تقوا میداند تقوای الهی قدرت تشخیص حق و از باطل به ما انایت می کند در بحث تفسیر عرض کردیم حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست میکند ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا پروردگار ما را ابزار فتنه برای کافران قرار نده تا به حال معانی مختلفی از فتنه و کاربردهای اون رو از منظر قرآن کریم تقدیم محضر کردیم و متناسبه با دعای حضرت ابراهیم به شرح و توضیح این معانی و تطبیق اونها پرداختیم اکنون یک معنا و یک کاربرد دیگر برای کلمه فتنه در قرآن کریم رو تقدیم میکنیم و اون رو تطبیق میکنیم با دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه یکی از معانی فتنه امتحان هست که در قرآن کریم می فرماید احس ناس ان یترکو ان آمننا و هم لا یفتنون آیا مردم گمان کردن رها و یله هستند و از اونها امتحان نخواهد شد خب در واقع حضرت ابراهیم بنابراین معنا از خداوند متعال میخواهد که پربدگارا ما را وسیله امتحان کفار قرار نده مقدمتا عرض کنم در قانون و سنت الهی اصل امتحان اجتناب ناپذیر هست انسان ها به گونه آفریده شدهاند که در حرکت هاشون تصمیم هاشون خیلی وقتا بر سر دراهی قرار میگیرن کار برشون دشوار میشه چون انتخاب راه درست کار مهم و سرنوشتازی است خداوند محتال هم بندگانش رو در این موارد راه کرده ارشاد فرموده ولی اونها رو در انتخاب راه آزاد گذاشته و نسبت به تصمیمات و انتخاب انسانها در این موارد اینجاست که خداوند انسانها رو امتحان میکنه که چه کسی راه ایمان رو و چه کسی راه کفر رو در پیش میگیره قرآن بیفرماید قل الحق من ربكم رب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سوره كهف آيه سخن حق فقط از سوی پروردگار شماست یا پس هر کسی ایمان بیار و هر کس که خواست به راه حق بر اختیار با خود اوست و هر کس راه کفر رو پیمود باز هم اختیار با خود اوست گرچه وظیفه این است که انسان در راه حق بماند از جمله آیاتی که در آن فتنه به معنی امتحان به کار رفته آیه 28 از سوره مبارکی انفال هست فرمود اعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه خداوند در این آیه کریمه از دو مورد انسانها در اون مبارد امتحان میشن یاد میکند و چون امتحان کردن خداوند یک قانون و سنت الهی است تا ایمان افراد مشخص بشه پس کسی نباید از خدا درخواست کنه و انتظار داشته باشه که خداون این قانون امتحان و این سنت الهی رو در او اعمال نکنه او رو امتحان نکنه چون همون که عرض کردیم امتحان کردن خداوند از قوانین اجتنام نپذیره قرآن می و نبلو کن به شر و الخیر فتنه شما رو به خیر و شر می آزمائیم. عند جبل البلاغه حضرت امير سلام عليه فرمودند لا يقولن احدكم اللهم إني بك من ليس أحد وهو مشتمل على من من مضلات الفتن حضرت امير عليه خطاب به همه ما میفرمایند هیچ کس از شما به خدا نگی خدا یا از فتنه به تو پناه میبرم چون کسی نیست که در فتنه این نباشه لکن اگر کسی میخواد به خدا پناه ببره باید از فتنه ها و آزمایش ها و امتحان های گمراه کننده به خداوند پناه ببره و نکته مهم دیگر این که خداوند در امتحان هیچ کسی رو استثنانه کرده بلکه حتی از بندگان مخلص خودش بندگان برگزیده خودش هم امتحان کرده امتحان های سخت مثل امتحانی که حضرت آدم دادن مثل امتحانی که حضرت ابراهیم داشتن مثل امتحانی که حضرت عیوب داشتن و همه انبیاء الهی الهاسل هر که در این بزم مقربتر است جامع بلا بیشترش میدهند هریکی که ایمانش بیشتر باشه هر از تقواش بیشتر باشه امتحان در معرض امتحانها بیشتر قرار بگیره به همین خاطره که اولیاء الهی هم همواره از این امتحانهای سخت در حراس بودند. شاید در همین دعای حضرت ابراهیم الله علیه هم همین منظور بوده که به خدا عزم کند رب بلالا تجعلنا خطتا للدین کفر یعنی فروردگارا ما را ابزار فتنه و امتحان برای کفار قرار مده هر ردگار ما را از امتحانه هایی که پیش رو داریم موفق و پیروز بیرون بیاور سلام و تحییت ما را محضر وجود مقدس حضرت صاحب العمر امام اسعجلالله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بفرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا واحدا صدق الله العلي العظيم <تأكد> <تأكد> اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و لله رب العالمین نحمده و نستعینه و نؤمن بهی و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمد عبده و رسوله اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصل على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصل على أئمة المسلمين علي ابن الحسين زين العابدين ومحمد ابن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق ومس بن جعفر الكاظم وعلي بن مسبب المرتضى ومحمد ابن علي الجباد وعلي بن محمد الهادي والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة ابن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من اعدائهم اسيكم عباد الله ونفس بتقوى الله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یکی از مشکلات مهم در جامعه انسانی کنترل نشدن عوامل انحراف و در نتیجه سقوط شخصیت والای انسانی است از این رو نقش تقوا در رشد شخصیت ها و تکامل اونها و جلوگیری از انحراف روحی اهمیت بسزایی دارد به شرط اون که تقوا با همان خصوصیاتی که در قرآن آمده و در روایا تفسیری کردن رعایت بشه یا اجل الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ای ایمان آورندگان چنان که بذوار خداست تقوا پیشه کنید یعنی تقوای شما باید ثمرش در انجام واجبات ترک محرمات ظاهر بشه تقوایی که مستمر باشه پیوسته باشه این چنین تقوایی نجات بخش است پروردگار را به حق محمد و آل محمد ماه را از اهل طوا قرار بده در این خطبه ابتداعا به تذکر چند مناسبت با توضیح مختصری میپردازم و بعد یک مطلب تحلیلی با دو تذکر رو تقدیم می‌کنم مناسبت اول روز شنبه دوم دی و چهارم ربیع آخر در تقویم سال روز تولد حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ذکر شده ضمن تبریک این روز حدیثی رو که اون حضرت از وجود مقدس امام هشتم علیه السلام نقل کردن تقدیم میکنم المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان اون است که دیگران از دست و زباد او در امان باشد ولیست من نامن لم یامن جار هو از ما نیست کسی که همسایش از گزند او در امان نباشد به هار الانوار جلد هفتاد یک سفقه و 259 روز یک شنبه استقومد ای ماه سال روز آغاز عملیات کربلای چهار با رمز محمد رسول الله در سال 1365 هست یادشان گرامی باد مراقب باشیم حق در از مندگان و جهادگران راه خدا رو که حفظ دستاوردهای های انقلاب و اطاعت از رهبریس فراموش نکنیم روز یک شنبه صبح و روز سبت احوال هست که از این عزیزان هم تشکر میکنیم روز دوشنبه چهارم چهارام دی ماه مصادفه با 25 دسامر میلاد با سعادت پیامبر علالعظم الهی یکی از پیامبران علالعظم الهی حضرت سبن مریم سلام الله علیه ماست ما تبریک از همه مسیحیان میخواهیم که بر راه و رسم آن پیامبر بزرگ الهی باشند که عبارت بود از احترام به کرامت انسانها دوری از ظلم و تجاوز به حقوق انسانها در روایتی آن بزرگوار فرمود تو بال المصلحین بین الناس ملائکه هم القربون یوم القیامه تحف القول خوشا به حال کسانی که در بین مردم به اصلاح می سشم سهشنبه پنجم دی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات این بلای طبیعی است این نامگذاری برای اونه که هم مسئولان و هم مردم به وظایف خودشون در برابر چنین حوادثی عمل کنند تا از های این گونه عبادست در امان باشند. از نقش دعا و صدقه و رعایت احکام الهی در جلب رحمت خداوند و دفع بلاها هم غافل نباش. چهارشنبه شش دیماه مصادف با هشتم ربیال سال روز میلاد خجستی حضرت امام حسن اسکری علیه السلام در سال دویست و سی و دوست. تبریک ارز میکنیم و حدیثی رو از اون حضرت تقدیم میکنم ما عقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تزله تو حقل العقول البستگی به چیزی که تا اون حد که انسان رو ذلیل کنه حالا ریاست باشه شهرت باشه مال باشه شهوت باشه انسان رو به ذلت بیاندازه این مورد انتقاد امام حسن عسکری سلام الله علیه است سال روز شهادت شهید آیت الله غفاری رو در پنشمبل هفتم دی ماه داریم در سال 1352 که تسلیت ارز میکنیم و همچنین هفتم دی سال روز تشکیل نهزت سواداموزی به فرمان رهبر عظیم و و فقید انقلاب حضرت امام با انگیزه به سواد رساندن اقوام و تباعفی که از این نعمت محروم بودن با آمار و که مدیرکل کل محترم آمونش بربعش قوم در باره افزایش سواد آموزان ارائه دادند جای تغییر و تشکر داره ولی همچنان نیاز به همت مردم عزیز تا قطع کامل بی از این کشور امام زمان علیه السلام باید تلاش کرد. روز جمعه آینده هشتمه دیماه مصادف باده روی الاخر مصادف با رهلت ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ها در شهر مقدس قومب هست گوشه ای از وظائف ما نسبت به اون بزرگوار رعایت حریم و حرم اون حضرت با حفظ افاف و حجاب و دوم رعایت انصاف از طرف کسبه و بازاریان محترم قومب سوم تلاش حوزه علمیه و نهادهای فرهنگی برای ارتقاء شهر مقدس قم در تراز امولقراهای جهان اسلام نکته بعدی توجه به معماری اسلامی در این شهر مذهبی است نکته بعدی پاکیزگی و نظافت شهر است تذکر بعدی رعایت قواعد و قوانین رانندگی به خصوص موتورسواران که خیلی تلفات در اثر بی احتیاطی اینها اتفاق می‌افته به هر حال ما اگر این قبیل آداب و احکام را رعایت کنیم می توانیم این شهر مذهبی رو ارتقا ببخشیم و حضرت معصوم سلام الله ها رو از خودمون راضی کنیم و با رعایت این سری مسائل و احکام چشم امید به شفاعت اون حضرت داشته باشیم به حضرت معصوم سلام الله در در زیارتش رو کنیم یا فاطمه اشفعی لنا فلجنه وفات حضرت آیت الله عالی سیرازی اعلی الله مقامش شریف زایعه بزرگی برای حوزه علمیه و مردم عزیزمون بود این مربی بزرگ سالها از عمر شریف خودشو در سنگر‌های مختلف برای تربیت طلاب و جوانان عزیز صرف کرد مجاهدت های ایشان قبل و بعد از انقلاب نشان از تعهد و دلسوزی ایشان داشت رضوان و رحمت خدا بر همه عالمان و فقهای در گذشته باد شهادت شهید مهدی ایمانی که سالها در کسوت خادم حرم حضرت معصومه سلام دلیها علیها خدمت گذاری در بود رو به خانواده محترم و همکاران عزیزشون تبریک و تسلیت عرض می کنم و همچنین شهادت شهید اهل ادب و قلم شهید حاج علی خوشلفز رو به خانواده محترم و هم رزمان شان و مردم عزیز همدان تبریک و تسلیت ترز میکنم و همه به خصوص به جوانان عزیز توصیه میکنم که اثر مندگار این شهید یعنی کتاب وقتی محتاب گمشد رو بخانن ازش قلقو بگیرند و نصار روح همه این در گذشتگان سلواتی رو هدیه بفرمایید در این قسمت از خود به دوم افتداعاً یک تحلیل و سپس دو تذکر رو تقدیم میکنم انقلاب اسلامی ایران علا فرازها و فرودها و توتعه های داخلی و بین المللی، با وجود زیرساختهای های مستحکم فکری و ارزشی و پشتوانه مردمی و هدایت های الهی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب با اقتدار منطقهی که دارد مسیر رشد و پیشرفت رو به فضل الهی تا تحقق تمدن نوین اسلامی به پیش میبرد. با این وصف در این مقطع باید بیش از گذشته نسبت به توتاهای آمریکا و سهیونیست ها و مزدوران منطقه آنها شناخت و حساسیت لازم رو داشته باشیم دشمنان انقلاب امروز در مقابل مدافعان حرم شکست زلطباری خوردن برنامه های اونها برای تسلیم ملت ایران از طریق نشان دادن در باغ سبز و فریب دادن در برجام نیز راه به جایی نبرده و از طرف تحریم اقتصادی اونها برای آسیب رساندن جدی به کشور به نتایج دلخواه اونها نرسیده از همین رو تلاش گسترده ای رو برای القاع ناکارامدی نظام اسلامی و سیاه و بدبین کردن ملت و ایجاد جنگ روانی به شکل سازمان یافته و عملیاتی تدارک دیدند از سوی دیگر القاع یأس و ناامیدی نسبت به تداوم انقلاب اسلامی رو در دستور کار خودشون قرار دادند و در کنار اون با امپراتوری رسانعی و طراحی نفوذ و تخریب روحانیت از یک سو و دستگاه های حاکمیتی حافظ نظام از سوی دیگر و با به میدان آوردن غرب نوین با پوشش ناسیونالیسم ایرانی و باستانگرائی استعمار فرانوی آمریکایی سه... امریکای سهیمیسی رو با پیش برد برنامه غرب در دستور کار خودشون قرار دادن و از این طریق به تزویر و فتنگری نوینی پرداختن که اصل آن کمتر از فتنه سال 88 نیست هوشمندی و بسیرت نیروهای مؤمن و انقلابی و آشورائیان خالق نوح دی در این مقطع ضروری است و علی رغم نارسایی ها و وجود مشکلات غیر قابل انکار تنها راه برون رفت از این مشکلات دل سپردن، معتقد شدن ملتزم شدن مسئولان و مردم به رهنمودهای دل سوزانه به هدایت های رهبر حکیم و فرزانه انقلاب است و بس بدون شک انقلاب اسلامی مثل همه انقلاب ها سختی های خاص خودش رو داره نباید از وجود این مشکلات مایوس شد بلکه باید با مقاومت انقلابی یعنی اصرار بر تحقق اهداف انقلاب و تلاش مجاهدانه توأم با امید فا ایمان در مسیر امام و رهبری به تکلیف الهی خودمون عمل کنیم تا نصفت خداوند همچنان بر کشور امت ما نازل گردد قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنو انتنصر الله ینصر کم و یسبت اقدامکو و الذین کفرو فتعسن لهم و اضل اعمالهم ای کسانی که ایمان آوردید اگر بیاری خدا برخیزید خداوندم شما رو یاری میکنه گام هاتون رو استوار میکنه و بر کافران هلاك و نابودی باد و خداوند اعمالشون را باطل و تباه ساخت باید هر کس در حیته مسئولیت خود باری رو که بر عهده گرفته به خوبی برداره امروز اشرافیت سیاسی و فساد اقتصادی و سوء مدیریت در برخی دستگاه ها تحدید جدی برای کارامدی انقلاب اسلامی است در مقابل زیستی و روحیه مردمداری و تکریم ارباب رجوع فارغ از تشریفات اداری و پیش برد جدی اقتصاد مقاومتی و تحول در چرخه مدیریت اجرایی جهت تقریت کارامدی انقلاب اسلامی یک تکلیف الهی و ضرورت حیاتی برای با سازی اعتماد مردم هست و اما دو تذکر تذکر اول توصیه به مسئولان و کسانی که در عرصه معیشت مردم کار دارن خصوصا اکنون با توجه به فصل بوجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم جمهوری اسلامی باید تلاش و وقت خودشون رو صرف کنن حجر را جوری ببندن که اولویت حل مشکلات روزمره مردم رو مد نظر داشته باشن فاصله فقر و فقیر و غنی بسیار زیاد است این مرزی نظر اهل بیت نیست و قیام انقلاب ما و شعار انقلاب ما این نبود تذکر دوم قانون اساسی ایران سمره فقه اهل بیت اسمت و تهارت یعنی این قانون برگرفته از فقه اهل بیت کسانی که این قانون رو تنظیم کردن بر اساس آیات قرآن و کلام اهل بیت رو تنظیم کرده و فقهای شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات از جهت سیادت فقهی نظام اسلامی رو بر عهده دارند بنابراین در اینجا سربسته توصیه میکنم قوای استگانه و سایر نهادها باید بدانند که حریم فقهی شورای نگهبان در واقع شعبه از حریم فقه اهل بیت علیه السلام دادگی در مقابل فقه شورای نگهبان و تدعیف این نهاد مقدس در واقع مقابل با فقه اهل بیت علیه السلام و در نهایت دشمنی با خداوند متعاله ما مسلمانی پیرو اهل بیتی مراقب باشیم نحوه انتقادها از حال نظرها منجر به رد حکم فقها ها نشه چون بر حسب کلام امام صادق علیه السلام وقتی فقیه حکمی میکنه فلم یقبل من امام صادق میفرمان فی اینم از سخف و با حکمنا و علینا رد و راد و علینا علی الله، و هو و علا, علا حد شرچ بله در برابر فقه اهل بیت و فقه که از اهل بیت دم میزنن و کلام اونها رو رد کردن چنین پیامدی دارد کافی جلد یک صفحه شست و هف اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و توفیق عبادت و بندگی و عدب بندگی را به همه ما مرحمت بفرما فرج مولا و آقای من امام زمان را برسان، روح متحر امام، ارواح شهیدان، مراجع مازین و همه در از اهل ایمان با اولیاء محشور بفرما طول عمر با عزت و اقتدار و نفوذ کلمه بیشتر به رهبر عزیزمان مرحمت بفرما مسلمانان جهار بر کفار و مشرکین پیروز بگردان مسئولان خدمتگزاران و همه رزمندگان در خدمت اسلام را توفیق پیروزی و خدمت بیشتر رحمت بفرما جان بازان مریضان اسلام شفا و رحمت بفرما پروردگار باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناکل کوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته